اما آخرین، اما چی؟ آخرین، آخرین قائداس کتاب، آخرین قائدای من قائدای و کتابه که اسلوب حکیم توصیه که کجی رو توصیه حکیم. اسلوب حکیم. اسلوب, حاکیم. اسلوب حاکیم چیز خوبیه که زیاد تو و بیا اسلوب الحکیمی. تلق المخا طبي بريل ما يترقبه أسلوب حكيمين كشما مخاطبه دوچار كلي با چيزي كه اون انتظار نداشت ها به چه شكل اما بترك سؤاله والاجابه عن سؤال لم يسأل یا با این کار که شما اون از شما سوالی پرسیده سؤالش رو جواب ندهی و سؤالی رو جواب بدی که اون نپرسیده طلقی مخاطب چی؟ جان؟ یعنی ملاقات مخطب. کردنش برخورد کردن با مخاطب با چیزی که رو نداشت با چیزی که در ذهنش نبود آه. با این با با چه حالتی روخ میده میگه یا این که سوالی رو که کرده شما سؤالشو جواب نمیدی و سوالی رو که نکرده جواب میدی اما به ترک سوالی و الاجابه ان سؤالی لم یساله انکار انجام میگیره یا این که اون سوالی رو که پرسیدی ترکش میکنی سؤالشو جواب نمیدی و جواب میدی سوالی رو که نپرسیده و اما به حمل کلامیه اле غیری ما کان یقصد یعنی سخنگورو حمل بر چیزی میکنی که منظور اون اون شخص نبوده آه شما سخنشو حمل بر چیزی دیگه میکنی و بر قانون حملی کردی کار چ کارش میکنی پاسخ میدی او میکنی اشاره تانه چرا این کارو میکنی تا اشاره باشد یا انه کان ينبغي له أن يسأل هذا السؤال او یقصد از هزا المانه تا اشارهای باشد که تا اونو بفهمونی اشاره بکنی که شایسته بود که سوالو به این شکل مطرح بکنی تا اونو بفهمونی که آقا شایسته بود سوالو به این شکل مطرح کنی یا تا اونو بفهمونی که آقا اگر این معنا رو قصد کرده بودی بهتر بود شایسته بود که این معنا رو از اون سخرت چکار که منظورت این مع اگر این منظور از سخن داشته بودی بهتر, بهتر بود حالا بیا روی امثله این مسئله خیلی مسئله ساده است و سوی به حکم قال تعالی اسألونت عن اهلتی تو را در رابطه با ماها میپرسند. پرسند قول قل هی مواقیتو للناس والحج تو به آنها بگو که ماها وقتهایی برای مردم هستند برای اندازگیری وقتها و برای استفاده برای تعین حج خب اینجا سوال اونا چیز دیگه هست ولی جواب چیز دیگه هست موقعی که اونا تو رو از ماها میپرسن منظور این اونا این بود که چرا مثلا اول ماه خیلی کوچیکه بعدش بزرگتر میشه هه بزرگتر میشه بزرگتر میشه ولی تو این جواب بهشون بده یعنی چی؟ یعنی اشاره‌ای داشته باش که آقا اگر اون سوال خب خیری برای شما درش وجود نداره اگر شما میپرسیدید که این کاربورد خود ماه چیه برای همون مشخص کردن ایام و موسم ها و فصل های این بهتر بود لذا سوال اونجوری پرسیدن و جواب چیزه؟ دیگه هست یا وقال ابن حجاج شعر قشنگی آورده ابن حجاج میگه قال فقلت اذ اتيت مرارا ببین ابن حجاج میگه که گفت سنگیلی کردم زمانی که بارها پیشت اومدم از این که بارها پیش تو بودم چیکار کردم سبب سنگیلی شدم تو ببین داره اون چیزی رو که اون گفته اون معنای رو که اون گفته این بحث سوال نیست میشه اینجا بحث معناه اون معنایی رو که اون آقا گفته این داره به شکلی دیگه چیکارش میکنه. پاسخ خوبش میده اون میگه که من از بس که تو اومدم چیکار کردم سنگیش. احساس سنگینی کردم قلت ثقل ثقالك بالايادي من بهش گفتم که تو شانه ام را سنگین کردی با هایت. ببینید اون منظورش این بود که از بس اومدن سنگینی کردن این میگه نه تو از بس که برمان انعام کردی فضل کردی کاهل ما چیه؟ سنگین کردی قال طول تو گفت که طولانی کردم طول دادم قل تو اولیت طولا گفتم که نعمت و فضل و احسان بخشید گفت که طول دارن یعنی طولانی کردن، ها؟ چون طول هم به معناه، طولانی کردن هم به معناه نعمت، طول معنا چیه؟ نعمت. قال ابرام تو گفت که آزارده کردم، ببین ابرام تو به معنی آزردگی و به معناه محکم کاری هم میشه. این برداشتش چی کرده از اون ابرامه؟ محکم کردی رفاقه تو گفته اون که گفت قال ابرم تو گفت که آزورده کردم قول تو حبل ویدادی من گفتم که تو محکم کردی ریسمان دوسی من را پس اینجا حمل کرده سخنش را نه بر اون چیزی که اون آقا گفته بلکه بر چیزی بر معنایی دیگر پس اسلوب حکیم بحثی ساده طرف سوالی میکرد اما شما میایی سوالی دیگر رو جواب میدی چرا؟ یعنی به جای اون سوال این سؤال رو میپرسیدی چی بود؟ بهتر بود یا مثلا سخنی رو میگه شما میایی از اون سخنش یه چیزی رو حمل میکنی برداشت میکنی که این برداشت چیه؟ بهتره، چه رو فهمیدی؟ خب پس تا اینجای ای کار به فضل و احسان خداوند سبحان ما تونستم اجاجی بد که بود با یک هست طوری میکنه که جوابوش در طوری ادره در اون اصول چی ها بود؟ در رسول ولو ها پس پس نه این حجاج، این ابن حجاج شاعره کدون فوتوی خودی احتجاج گفت اون یوسف ابن حجاجو میگی آ اون فرق او او اون وقتی که میگه اون طرف امیطوری حکیمانه جوابش میده خب اون امیر بود او خیلی فصیح بود نه ولی این نه این شاعری نه اون را میگم اگر باشه اینجا خیلی خوب موفق و موید خدا را شکر که ما 77 قاعده رو امروز تمام کردیم